مسنویه ماانویه مولوی برنامه بیستم صفت توحید گفت یارش را ای جمله من نیم خالف چون گل و خار چمن رشته یکتا شد غلط کم شد کنون تا بینی حروف کافنون کافنون همچون کمند آمد جذوب تا کشاند مر را در خطوب. پس دو تا باید کمندن در سور، گرچه یک تا باشد آن دو در اثر. گر دو پا، گر چهار پا ره را برد، همچون مقراز دوتا یک تا برد. آن دو هم بازان گازار را ببین، هست در ظاهر خلاف زان و زین آن یکی کرباس را در آب زد وان دگر هم باز خشکش می کند باز او آن خشک را تر می کند گوی یا زستیزه زد بر می تند لیک این دو زد استیزه نما یک دل و یک کار باشد در رضا هر نبی و هر ولی را مسلک است لیک تا حق میبرد جمله یکی است چون جمع مستمع را خواب برد سنگ های آسیا را آب برد رفتن این آب فوق آسیاست. رفتنش در آسیا بهر شماست چون شما را حاجت تاهون نماند آب را در جوی اصلی بازراند ناطقه سوی دهان تعلیم راست ورنه خود آن نطق را جوی جداست می روید بیبانگ و بی تکرارها تهده الانهار تا گلزارها. ها. ای خدا جان را تو بن ما آن مقام گندرو به حرف می روید کلام تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم. عرصه بس با گشاد و با فضا وین خیال و هست یابد زو نوا تنگتر آمد خیالات از عدم زان سبب باشد خیال از باب غم باز هستی تنگتر بود از خیال زان شود در وی قمر همچون هلال باز هستی جهان حسورنگ تنگ تر آمد که زندان است تنگ علت تنگی است ترکیب و عدد جانب ترکیب حزها میکشد کشد. زانسوی حس عالم توحید دان گر یکی خواهی بدان جانب بران امر یک فعل بود و نون و کاف در سخن افتاد و معنی بود صاف این سخن پایان ندارد بازگرد تا چه شد احوال گرگن در نبرد اداب کردن شیر گرگ را که در قسمت به ادبی کرده بود را برکند سر آن سرفراز تا نماند دوسری و امتیاز فنتقم نامن هم است ای گرگ پیر چون نبودی مرده در پیش امیر بعد از آن روح شیر با روباه کرد گفت این را بخش کن از بحر خورد سجده کرد و گفت که سمین چاشت خردد باشد ای شاه گزین. وانبز از بحر میان روز را، یخنی باشد شه پیروز را. وان خرگوش بحر شام هم شبچره این شاه با لطف و کرم. گفت ای روبه تو عدل فروختی این چون این قسمت زکی آموختی از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ گفت چون در عشق ما گشتی گراو هرسه را برگیر و بستان و برو روبه ها چون جملگی ما را شدی چون آزاریم چون تو ما شدی ما تو را و جمله اشکاران تو را پای برگردون هفتم نه برا چون گرفتی عبرت از گرگ دنی پس تو روبه نیستی، شیر منی. آقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز. روبه آندم بر زبان صد شکر راند که مرا شیر از پای آن که خواند گر را اول بفرمودی که تو بخش کن این را که بردی جان از او پس پس او را که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان تا شنیدم آن سیاست حق بر قرون ماضیه اندر سبق تا که ما از حال آن گرگان پیش همچو روبه پاس خود داریم بیش امت مرحومه زین رو خانده من. آن رسول حق و صادق در بیان استخان و پشم آن گرگان ایان بنگرید و پند گیرید مهان آقل از سر بنحدین هستی و باد چون شنید انجام فرعونان و آد ور بننحد دیگران از حال او، عبرت گیرند از ازلال او. تحدید کردن نوح علیه السلام مرقام را که با من مپیچید که من رو پوشم با خدای میپیچید در میان این به حقیقت ای مخزولان. گفت نو های سرکشان من من نیام من ز جان مردم به جانان میزیم چون بمردم از حواس بلبشر حق مرا شد سم و ادراک و بسر چون که من من نیستم این دم ز هوست پیش این دم هر که دم زد کافر هست اندر نقش این روبه شیر سوی این روبه نشاید شد دلیر گر زروی صورتش می نگروی غره شیران از او می نشنوی گر نبودی نوه را از حق یدی پس جهان را چرا برهم زدی صد هزاران شیر بودو. در تنه او چو آتش بود و آلم خرمنه چون که خرمن پاس عشر او نداشت او چونان شوله بران خرمن گماشت هر که او در پیش این شعر نهان به ادب چون گرگ بگشاید دهان همچو گرگان شیر بر در را ندش، فنتقم من همو بر خاندش زخم یابد همچو گرگ از دست شیر پیش شیر ابله بود کوشد دلیر کاش که آن زخم بر تن آمدی تا بودی که ما و دل سالم بودی قوتم بگسه چون اینجا رسید چون توانم کرد این سر را پدید همچو آن اش کم اشکم کنید، پیش او روباه بازی کم کنید جمله ما و من به پیش او نهید ملک ملک اوست ملک او را دهید چون فقیر آیدند در راه راست شیر و سید شیر خود آن شماست زان که او پاک است و صبحان وصفه اوست. بینیاز است و ز نغز و مغز و پوست. هر شکار و هر کراماتی که هست از برای بندگان آن شه است. نیست شهراتم بهر خلق ساخت این همه دولت خنک آنکو شناخت. آنکه دولت آفرید و دوسرا ملک و دولت ها چکار آید ورا پیش صبحان بس نگه دارید دل تا نگردید از گمان بد خجل کو ببیند سر و فکر و جست و جو همچو اندر شیر خالص تار مو آنکه او بی نقش ساده نشد نقش های غیب را آینه شد. سر ما را گمان موقن شود. زن که مؤمن آینه مؤمن بود. چون زند او نقد ما را بر مهک، پس یقین را باز داند او شک. چون شود جانش مهک نقد ها، پس ببیند قلب را با. خال براه درستاندن پادشاهان سوفیان آرف پیش روی خیش تا چشمشان بدیشان روشن شود پادشاهان را چنان عادت بود این شنیده باشی اریادت بود دست چپشان پهلوانان ایستند. زانکه دل پهلوی چپ باشد و بند. مشرف و اهل قلم بر دست راست زانکه علم و خط و سبت آن دست راست. سوفیان را پیشرو موضع دهند. کاینه جانند و، زاینه بهند سینه سیقل ها زده در ذکر و فکر تا پذیرد آینه دل نقش بکر هر که او از صلب فطرت خوب زاد آینه در پیش او باید نهاد عاشق آینه باشد روی خوب سیقل جان آمد و تقبل قلوب آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف علیه السلام از او تحفه و ارمغان آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد مهمان کاشنا بودند وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت کن زنجیر بود و ما حسد آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله شیر را برگردن از زنجیر بود، بر هم از زنجیر سازان میر بود. گفت، چون بودی ز زندان و ز چا. گفت، همچون در مهاق و کاست ماه. در مهاق ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بعد گردد بر سما، گرچه دردانه به هاون کفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. گندمی را زیر خاک انداختند. پس ده خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کفتندش زاسیا. قیمتش افزود و نان شد جان فضا. باز نان را زیر دندان کفتند. گشت اقل و جان و فهم هوشمند باز آن جان چون که محوه عشق گشت یعجب الذراعه آمد بعد کشت این سخن پایان ندارد بازگرد تا که با یوسف چه گفتان نیک نیکمرد بعد قصه گفتنش گفت ای فلان هین چه آوردی تو ما را ارمغان بر در یاران توهی ای فتا هست چون بی در آسیا بر در یاران توهی دست آمدن همچو بیگندم سوی تا شدن. حق خلق را گوید به حشر ارمغان کو از برای روز نشر جعتمونا و فرادا بینوا همبدان سان که خلقناکم کزا. هینچه آورده اید دستاویز را ارمغان روز رستاخیز را. یا امید بازگشتن تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. منکری مهمانیش را از خری، پس ز مطبخ خاک خاکستر بری، ورنهی منکر این دست توهی، در در آن دوست چون پامینهی. اندکی صرفه بکن، از خواب و خر، ارمغان بهر ملاقاتش ببر، شو قلیل نوم مما یهجعون باش در اسهار از یستغفرون اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نوربین و از جهان چون رحم بیرون روی از زمین در عرصه واسع شوی آن که الله واسع گفته اند ارسای دان کنبیا در رفتند. دل نگردد تنگ، زان ارسای فراخ، نخل تر آنجا نگردد خوشک شاخ. حاملی تو مرحواست را کنون، کند و منده میشوی و سرنگون، چون که محمولی نه حامل وقت خواب، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب. چاشنی دان، تو حال خواب را پیش محمولی حال اولیا اولیا اصحاب کهفند، ای انود، در قیام و در تقلب همرقود. می کشد شان به تکلف در فعال، بی خبر ذات الیمین، ذات الشمال چیست آن ذات الیمین؟ فعل حسن، چیست آن ذات شمال؟ اشغال تن میرود این هر دو کار از انبیا خبر زین هر دو ایشان چون صدا گر صدایت بشنواند خیر و شر ذات کوه باشد ز هر دو بخبر. گفتن مهمان یوسف علیه السلام را که آینه آوردمت ارمغان تا هر بار که در وی نگری، روی خوب خود بینی و مرا یاد کنی. گفت یوسف هین بیاور بر ارمغان عوض شرم انتقاضا زد فغان گفت من چند ارمغان جستم تو را ارمغان در نظر نامت مرا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 لایقان دیدم که من آینه پیش تو آرم چون نور سینه تا ببینی روی خوب خود دران ای تو چون خورشید شمع آسمان آینه آوردمت ای روشنی تا چو بینی روی خود یادم کنی آینه بیرون کشید او از بغل خوب را آینه باشد مشتغل آینه هستی چه باشد نیستی نیستی بر گر تو نیستی هستی اندر نیستی بتوان نمود مالداران بر فقیر آرند جود آینه صافی نان خود گرسن است. سوخته هم آینه آتش زن است نیستی و نقص هر جای که خواست آینه خوبی جمله پیشه هاست چون که جامع چست و دوزیده بود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 کو گمان می برد خود را کمال علت بدتر پندار کمال نیست اندر جان تو عیزو دلال از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون رود علت ابلیس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 در تگ جو هست سرگین ای فتا گرچه جو صافی نماید مرتو هست پیر راهدان پرفتن، باغهای نفس کل را جوی کن جوی خود را کی تواند پاک کرد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 وان زپرتودان مدان از اصل خیش برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند